فصل سوم تا 5 شیش روز به دیدنش نرفتم، خبردار شدم بیمار شده. دوستاش به ایادتش میرفتن، اما من بر احساسم غلبه کردم. دکتر لوشین روزی دوبار برای بررسی وضعیتش میرفت اما زیاد اونجا نمیمونند. خبر داشتم مادانوف تلاشی برای جلب رضایت زینوشکان نمیکنه. کنت مالدوسکی هم با اینکه میدونست از چشم زینوشکا افتاده، بازم هر روز به خونشون سر میزد. چند روز که گذشت طاقتما از دست دادم به دیدنش رفتم. دیدارم زیاد خوشحالش نکرد معلوم بود حضورم حس خوبی در اون ایجاد نکرده. نگاهشون مدام از من می سه روز بعد وقتی بی هدف توی باغ میگشتم اونو توی باغ دیدم. صدام زد مدتش که با هم حرف نزدیم. احوالشو پرسیدم. گفت بهتر شده گفتم یعنی دوباره مثل قبل میشید خندید و پرسید مگه تغییر کردم خیلی تغییر کرده بود سرمو تکون دادم گفتم حس میکنم شما نمیخواید دوستتون داشته باشم لبخند زد چرا نمیخوام اتفاقا تو رو دوست دارم اما نه مثل قبل من ازت بزرگترم حسم بهت مثل خواهر بزرگتره تو عاقل و مهربونی هستی دوست همیشه کنارم باشی گل سرخی که چیده بود دستم داد و اشاره کرد دنبالش برم درست همون لحظه حس کردم عاشق از قبل شدم بعد از نهار بازم مثل شب قبل همه توی خونه زینوجکا جمع شدیم مایدانوف شعر تازه‌ای با خودش آورده بود همه ساکت بودن از سر و صدای شب اول خبری نبود من کنار زینوجکا نشسته بودم قرار شد هرکس خوابی که دیده تعریف کنه اما بازی خوبی عذاب در نیومد تمام خوابها بیمزه بودن و جذابیتی برای شنیدن نداشتند. مایدونوف منظومه و خوند خسره همه رو سر برد شعرش هنوز تموم نشده بود که زینوچگاه پیشنهاد داد داستان تعریف کنند. خودش اول از همه شروع کرد دهانش دهانشو فرو داد انگار از روی کتاب داستانشو میخوند گفت در شبی تابستانی در کاخی مجلل میهمانی برپاست. ملکه بلند بالا و زیبا در مهمانی میدرخشد. همه عاشق ملکه اند به زینوشکا نگاه کردم با خودم گفتم ملکه خود اونه ملکه خودشه زینوشکا داستامشو تعریف کرد همه دور ملکه جمعاند تحسینش می کنند. موسیقی می نبازد و نورها همچنان می درخشند ملک ها را میشنود. اما به هیچ کدام از مهمانها نگاه نمی کند نگاه ملکه به باغ است در دلش می گوید همه شما عاشق منید و من دل به کسی دادم که ته باغ کنار فواره در انتظارم ایستاده اونم مثل شما لباس قیمتی به دارد. نظر شناس هست همه ساکت شدند. زینوچکا چشم از مهمونا برداشت و به پنجره نگاه کرد بازی به پایان رسید مایدونوف دوباره برامون شعر خوند مادر زینوچکا پیغام داد سرش درد میکنه. کنه زینوچکا به فکر فرو رفته بود و حرفی نمی زد وقتش بود هر کس به خونش بره چهره زینوچکا موقع گفتن داستانش لحظه ای از مقابل چشمهام دور نمیشد. اون شخص کی بود به هر چیزی که توی خونه زینوجکا می‌دیدم عادت کرده بودم به بین از ما ترتیب بودن خونه به کارد و چنگالای شکسته زنگ زده به نوکر ابوس و بداخلاق و غرغرهای شاهزاد خانم. اما نتونستم خودم و به اون چه که درباره زینوجکا فکر می‌کردم عادت بدم لباس پوشیدم و از خونه بیرون زدم شب تاریکی بود خشخش شاخ و برگ درختا، سکوت شبا می شکست نسیم آرومی می وزید قلبم به شدت می به پرچین رسیدم تو چند قدمیم صدای پایی شنیدم نفهمیدم صدای پا بود یا تپش قلبم به دربرم نگاه کردم صدای خندهی به گوشم رسید شایدم صدای خشخش برگا بود یا زمزمه نسیم تو گوشم صدا زدم کیه؟ به پشت سرم نگاه کردم کسی نبود دوباره صدا زدم کیه؟ کسی اینجاست؟ هیچ کس نبود مدتی ایستادم بعد به خونه و اتاقم برگشتم روز بعد فقط زمانی زینوجکا را دیدم که با مادرش سوار دروشکه‌ای کرایه‌ای بود و با هم جایی میرفتند. از تمام کسایی که به خانه می می‌آمدند فقط کونت مالدوسکی به خانه ما می اومد. پدرم چندان تحویلش نمیگرفت. تازه ذع کمی هم رفتار می کرد. اون روزم کونت منزل ما بود تا منو دید لبخند زد لبخندی که بیشتر عصبانی می کرد. وقتی مطمئن شد از دستش عصبانی شدم دوباره گفت چرا عصبانی میشی؟ مگه قرار نیست تو همیشه همراه همسایه باشی و لحظه ای ازش دور نباشی؟ م? وقتی فهمید منظورشو نمیفهمم توضیح داد؟ پیشنهاد من اینه که روز و شب مراقبش باشی روز که روشن و چیزی پنهان نیست توصیه میکنم شبان نخوابی یادت نرفته که طبق داستان باید کنار فواره باشی <تص> بعد؟ پشتشو کرد و بدون اینکه با حال من اهمیتی بده دور شد. هرسم گرفت. فکر کردم نکنه خود ماللسکیه که شبا دزدکی به باغ میره. یا شاید کس دیگه ای که اون از رفته آمدش خبر داره. تصور دیدن کسی کنار زیینوجگاه برام سخت بود حاضر بودم با مشت لهش کنم نابودش کنم و از بین ببرمش. به اتاقم برگشتم. شاقوی انگلیسی که تازه خریده بودم و برداشتم. دستام می درزید خودم رو برای هر اتفاقی آماده کرده بودم مادر وقتی حال بیقرارم دید گفت این چه وضعیه؟ انگار با همه قهری مادر چه می دونست تو دلم چی میگذره ساعت یازده شب به اتاقم رفتم ساعت دوازده دکمه های لباسم و بستم و به باغ رفتم جایی و برای نگهبانی در نظر گرفتم ته باغ. کنار دیوار مشترک خونه ما و زینوچگاه زیر شاخه های انبوهی پنهان شدم فکر میکردم چیکار کنم فریاد بزنم یا با چاقوم کارشو تموم کنم ساعتی گذشت سردم شد احساس کردم بی خودی در تاریکی شب اینجا ایستادم و خودم و آزار میدم از کارم خندم گرفت به خصوص وقتی به چاقوم فکر میکردم حتما مالدوسکی دستم انداخته بود را باغ و زیر پا گذاشتم صدایی نبود خاموشی کامل بالای دیوار خراب گلخونه رفتم از اون بالا دور دستو می دیدم ناگهان صدای باز شدن در و شکستن شاخه درختی به گوشم خود. صدای قدمهایی تند و سباکو شدیدم لرزیدم با خودم گفتم پیداش شد رو از جیبم بیرون کشیدم تمام تنم پر از خشم بود توی تاریکی مردی رو دیدم، مرد آشنا بود، اون پدرم بود، بارونی بلندش و پوشیده بود و کلاهی روی سرش کشیده بود، روی پنجه پا از کنارم گذشت، متوجه من نشد، چاقوم زمین افتاده بود، برای پیدا کردنش تلاشی نکردم، ترس به جونم افتاده بود، پدر از کجا آمد و کجا ناپدید شد؟ به نیمکت زیر بوته گل نزدیک شدم به پنجره اتاق زینوچکان نگاهی انداختم شیشه های کوچیک پنجره از روشنایی کم نور و ضعیف آسمون به رنگ آبی در اومده بودن. روز بعد با سردرد از رخت خواب بیرون اومدم آشفته و پریشون بودم غمی بزرگ توی دلم جا خوش کرده بود سر صبحانه زیر چشمی به پدر و مادرم نگاه کردم پدر مثل همیشه آروم بود و مادر برا شفته پدر بدون اینکه که کلمه با من حرف بزنه از پشت میز بلند شد فکر کردم دیگه چیزی بین من و زینوشکان نیست براش همه چیزو تعریف میکنم به دیدنش رفتم برادر دوازده سارش که توی دبیرستان ارتش درس میخوند برگشته بود. زینوشکا تا منو دید به برادرش اشاره کرد و خوشحال گفت. دوست تایزه برات اومده. با هم دوست باشید. به پسر نگاه کردم. چشما شبیه زینوشکا بود. زینوشکا خندید و ما رو به طرف هم هل داد. پرسیدم. بریم باق. پسر بچه لبخند زد. با هم راه افتادیم. لباسی نظامی از جنس ماهوت تنش بود. لباسش نوارای پهن طلایی داشت روی تابی که ته باغ بود نشست و من تابش دادم با اینکه همصحبتی هم صحبتی با اونو دوست داشتم اما غم بزرگی به دلم چنگ میزد یاد چاقو مفتدم بین علفه دنبالش گشتم پیداش کردم پسرک چاقو رو گرفت و ساقه کلفت علفی رو برید از ساقه نیلبکی ساخت و شروع به نواختن کرد اصر وقتی تنها ته باغ نشسته بودم زینوجکا پیدام کرد. صورتم خیس اشک بود و هیچ هق تمومی نداشت. ترسید. نگران پرسید: "چی شده؟ بگو. بگو چی شده؟ من از همه چی خبر دارم. من دوستت دارم. بگو ببینم از چی با خبری؟" چیزی نگفتم. کافی بود نگام کنه تا حرفم یادم بره. یک ساعت نگزشته بود که من و زینوجکا و برادرش در باغ مسابقه دو دادیم. دیگه گریه نمی کردم. همراه اونا می خندیدم زینوشکا قادر بود منو زیر زیرو رو کنه تمام هفته بعد تبدار و سرگردون بودم از احساساتم می ترسیدم چیزی توی سرم می چرخید و آزارم میداد. از پدرم فرار می تا با اون روبرو نشم اما نمی تونستم از زینوشکا فرار کنم کنار اون بودن و دوست داشتم از این سوختن و آب شدن لذت می بردم چند روز بعد وقتی از گردشی طولانی به خونه برگشتم حس کردم اوضاع خونه خوب نیست پدر خونه نبود و مادر سردرد داشت باید تنها نهار میخوردم قیافه خدمتکارا نشون میداد اتفاقی غیرعادی رخ داده جرأت نداشتم بپرسم چی شده یکی از خدمتکارا تعریف کرد پدر و مادر بگو مگوی سختی داشتن. مادر معتقد بود پدر بیوفایی کرده همین مسئله مادر رو به مرز جنون رسونده بود پدرم زیر بار نمیرفت. رفت. خدمتکار گفت وضعیت خونه خوب نبود و مادر مدام ناسزا گفته. خدمتکار تمام دعوا رو تقصیر نامه ی امضایی میدونست که معلوم نبود چه کسی فرستاده. دست و پا میلرزید. خدمتکار گفت نمیشه روی این کار سرپوش گذاشت. از خدمتکار دور شدم و به اتاقم رفتم. روی تخت افتادم. گریه نکردم، ناامیدم نبودم. حتی نسبت به پدرم احساس بدی نداشتم. روز بعد مادرم گفت برمیگردیم شهر. صبح زود پدر با مادر مفصل و طولانی حرف زده بود. هیچکس نشنید چه حرفایی رد و بدل شد اما مادر دیگه گریه نمی‌کرد. بدون اینکه از اتاقش خارج بشه از خدمتکار خواست براش غذا ببره. تمام مدت این طرف و اون طرف پرسه میزدم، اما به باغ نرفتم. به خونه یه همسایه هم نگاه نکردم شب اتفاق عجیبی افتاد پدر بازوی کنت مالدسکی رو گرفت و به راه رو آورد. سرش داد زد اگه یه بار دیگه اینجا ببینمت از پنجره میندازمت بیرون کنت سرشو پایین انداخت و از خونه بیرون رفت برگشت به شهر جدی بود پدرم هم دیگه نمیخواست توی یه ایلاق بمونه مادر رو راضی کرده بود بدون حرف و حدیث به شهر نقل مکان کنند. خدمتکار وسایل خونه رو جمع کردن. مادر به شاهزاده خانم پیغام فرستاد دیگه به دیدنش نره. دلم میخواست هرچه زودتر ماجره ها تموم شه. با خودم فکر میکردم زینوچکا به چه چیزی دل بسته؟ چرا از خراب شدن آیندهش نترسیده؟ چند روز بعد پشت پنجرهی خونشون سایه ای دیدم. زینوچکا پشت پنجره وایسده بود. طاقت نیاوردم. مگه میشد بدون خداحافظی برم؟ رفتم دیدنش. شاهصد خانم بی جواب سلامم داد زینوچکا لباس مشکی به تن داشت. رنگ و روش پریده بود و به هم ریخته بود. با هم به اتاقش رفتیم. گفتم اومدم ازت خداحافظی کنم. شاید برای همیشه. خوشحالم اومدیم. نگران بودم هیچ وقت نبینمت سکوت کرد و به چشمام خیره شد با صدای گرفته گفت اگه رنجون دبت منو ببخش باور کن من چیزی که شما فکر میکنید نیستم بازم دست و دلم از دیدنش میلرزید گفتم هر قدرم که آزارم بدی تا آخرین روز زندگیم دوست دارم سرشو پایین اندخت از اتاق خارج شد به شهر اسباب کشی کردیم قرار بود زندگی جدیدی و در شهر شروع کنیم فراموش کردن اتفاقات خونه یعلاقی کار راحتی نبود برای ترمیم زخم عمیق درونم نیاز به زمان داشتم بهترین راه فراموشی قدم زدن تو خیابونای شهر بود قدم می زدم که دکتر لوشینو دیدم از دیدنش خوشحال شدم دویدم طرفش با دقت نگاه هم کرد و با همون لحن مهربون همیشگیش گفت <تصفيق> هنوز رنگ رو پریده اما نگاهت پاکه چه خبر؟ حرفی نداشتم دستی به شونم زد و گفت این اصلو یادت باشه دل به هیچ کس و هیچ چیز نمد راستی خبرداری بلوظرفم خودشو گم و گور کرده؟ میگن رفته قفخاز عاقبت این جوون باید برات درس باشه عشق زینوچکا چه کارا که نکرده بود. به خودم گفتم دیگه هیچ وقت نمیخوام زینوچکا رو ببینم. هرچند بازی سرنوشت بازم زینوچکارو رو سر راهم هم قرار داد. زندگی توی شهر حالا هوامون رو عوض کرده بود. زندگیمونم به حالت عادی برگشته بود. پدر هر روز اسب سواری میکرد. گاهی هم از من میخواست که همراهش برم. اون روز پدر خوشحال و سرخوش بود. پیشنهاد داد با هم مسابقه بدیم. هرچند هر دو میدونستیم کی برنده میشه. راه افتادیم. با اسب تیسپای خودم چهار نل پشت سرش میتاختم به خیابون رفتیم از چند پرچین پریدیم از رودخونه مسکو عبور کردیم خسته شدم فکر کردم وقت برگشتن به خونه است اما برخلاف تصورم پدر توی ساحل رود جلو رفت منم دنبالش رفتم توی راه به تل بزرگی از الوارای بلند رسیدیم پدر افسار اسبش کشید و از اسبش پیاده شد منم پایین اومدم کنارش ایستادم. دهنه ای اسبش رو به دستم داد و گفت همینجا به من تا برگردم. پدر وارد کوچه باریکی شد. منم کنار رود راه رفتم و اسب رو دنبال خودم کشوندم. اسب پدر سرکش بود. مدام سر می جنبوند و تکون می‌خورد. از پدر خبری نشد. آسمون پر از ابرهای سیاه شد. بارون شدیدی میومد. به طرف کوچه‌ای که پدر رفته بود رفتم. پدر داخل کوچه نبود. نگران شدم. داخل کوچه رفتم. به تای کوچه رسیدم و سر پیچ کوچه دیگه ایستادم. کمی دورتر از من توی کوچه کنار پنجره بازی پدر پشت به من ایستاده بود. توی اتاق کنار پنجره کسی با پدر صحبت می کرد. اون زینوچکا بود. خوشگم زد. انتظار هر چیزی رو داشتم جز این. خواستم فرار کنم. نگران بودم اگه پدر سرشو برگردون و منو ببینه چیکار کنم اما نیروی کنجکاوی قویتر بود همونجا موندم گوشامو تیز کردم انگار پدر روی یه موضوعی پافشاری کرد. چهرش زیبا جدی و اندوهگین بود پدر شونه بالا انداخت و کلاهش روی سرش جابجا جا کرد معلوم بود حسلش سر رفته و صبرش تموم شده سرش سرشو پایین انداخته بود و کلمات بریده بریده‌ای ادا میکرد. شنیدم که گفت دست بردار زینوشکا سرشو بالا گرفت دستشو برای خدافزی دراز کرد باورم نمیشد پدر پدر تازیانشو بلند کرد همون تازیانهی که گرد و غبار پالتوشو با اون می تکند تازیانه رو تکون داد و با اون زربهی به دست زینوشکا زد صدای ضربه تازیانه توی گوشم پیچید دستم رو روی دهانم گذاشتم تا فریاد نکشم زینوچکا به پدر نگاه کرد صورتش سرخ شده بود دستش روی جای ضربه تازیانه گذاشت پدر مات و مبهوت ایستاده بود انگار که از خواب بیدارشه تازیانش رو انداخت باورم نمیشد. با بادلی پر از ترس و حیرت راهی که رفته بودم و برگشتم مثل خواب زده ها بودم گلوم درد می کرد. سرم پر از صداهای عجیب و غریب بود چند بار نزدیک بود اسب پدر از دستم در بره گیج بودم سردر در آوردم چه خبره با اینکه میدونستم بعضی وقتا پدر خون سردم کنترلش از دست میده اما اون چه که دیده بودم و باور نمیکردم صورتم از اشق خیس بود با خودم می میگفتم چرا دختر بیچاره رو کتک زد همون موقع صدای پدر رو از پشت سرم شنیدم دهنه اسبشو گرفت روی اسب پرید با پا به مهمیز اسب زد و با مشت به گردن اسب کوبید گفت تازیانم تازیانم نیست صحنه ای که دیده بودم جلوی چشمم زنده شد صدای تازیانش توی گوشم تکرار شد پرسیدم اه، اه، کجاست جوابی نداد به تاخت پیش رفت دنبالش رفتم پرسیدم تازیانتا کجا گام کردی نگاهی به من انداخت و جواب داد گمش نکردم. دور انداختم سرشو پایین انداخت به فکر فرو رفت. مهربونی و دلسوزی و توی چهرش دیدم. دوباره تاخت، منم پشت سرش تاختم. اما به پای اسبش نرسیدم بالاخره به خونه رسیدم. پشت میزم نشستم با خودم گفتم عشق حقیقی همینه چطور میشه زخمو تحمل کرد. فقط اگه آشق باشی تحمل درد امکان پذیره اون شب خواب عجیبی دیدم تو اتاقی تاریک پدر تازیانه به دست ایستاده بود زینوچکا گوشهی کس کرده بود خط سرخی روی پیشونیش بود پشت سرشون بلوزروف سراپا خونالود ایستاده بود از صبح همون روز تصویر تازهی از عشق داشتم تصویری که تا حالا در موردش فکر نکرده بودم شش ماه از نقل مکانمون به پترزبورگ میگذشت که پدر ناگهان سکته کرد و درگذشت چند روز پیش از مرگش نامه از موسکو دریافت کرده بود نامه ای که عمیقا ناراحتش کرد صبح همون روز که سکته کرد توی نامه به زبان فرانسه برام نوشت پسرم از عشق دور باش از این خوشبختی زهرالود دوری کن بعد از مرگ پدر مادر مبلغ زیادی پول به موسکو فرستاد چهار سال بعد دانشگاهم تموم شد. دنبال کار بودم. روزها رو بی هدف میگذروندم. شبی توی تئاتر مایدانوف دیدم. ازدواج کرده بود و شغلی دولتی داشت. بین صحبتاش گفت خبر داری بانو دولسکایا اینجاست؟ متوجه پرسیدم بانو دولسکایا کیه؟ زد زیر خنده. <تصفيق> همون خانم زست همونی که همه آشقش بودیم، یادته؟ گفت زینوچکا با مردی به نام دولسکی ازدواج کرده. قصد دارن به خارج از کشور سفر کنن. دولسکی اهل موسکو بود و پولدار. دار. صداشو صداش پایین رو و گفت با که زینوشکا داره، هر کار دشواری براش آسونه. به دیدنش برو، خیلی قشنگ تر شده. نشونی مهمون ای که زینوچکا اونجا بود و گرفتم. تمام روزهای گذشته برام زنده شد. تصمیم گرفتم روز بعد به دیدنش برم. اما کاری برام پیش اومد و یکی دو هفته این تصمیم به تأخیر افتاد. روزی که به مهمون خونه رفتم فهمیدم چهار روز پیش موقع زایمان از دنیا رفته. دربون مهمون خونه با تأصف تکون داد و تسلیت گفت. دلم هر ریخت. فکر اینکه میتونستم ببینم و ندیدمش غمگینم میکرد. تمام اتفاقات گذشته برام زنده شد انگار به یک بار تمام روزهای نوجوانیم تموم شد انگار هیچ وقت نوجوان نبودم کنار رودخونه ایستادم فکر کردم که زینوچکا در نزدیکی من جون داد عشق بزرگ روزهای نوجوانیم داخل گور خوابید صورتم خیس از عشق شد چطور اونو که جزی از روزهای زندگیم بود فراموش میکردم؟ اون که نخستین عشقم بود. دستم و به نرده ها تکیه دادم. به عبور آبهای رودخونه نگاه کردم. تنها کاری که از دستم برمیومد این بود که برای اون و پدر دعا کنم.